اگر در دوران غیبت به ما گفتن این فراز رو بخوانید در دعای اقتتا وارد شده هر شب ماه مبارکه رمضان این دعای اقتتا رو بخونید یک فراز است اینه که یک جا بگید الله همینا نرگه و الیکا فی دولة کریمه تو زل به هر اسلام و اهل و تو زل به هم نفع و اهل تا وقت جای دیگه بگید الله همینا نشک و الیکا فقط نبی و قیبت ولی و قلت عدد و تظاهر از زمان علیه تا اونجا و عدد عددنا و قیبت ولی یعنی خدایا من دارم میفهمم یه شب نه دو شب نه سی شب شب را ماه رمزان هی بخون بعد روش دقیقت چی میخونیم؟ خدایا اللهم نشک من دارم شکایت میکنم دارم درد دل رو بیان میکنم. چیه درد دل ما؟ پیغمبر نیست. فقد نبی نمی. نبی از میان ما رفت. در اینجا نیست پیغمبر که از ازهرات خطبه فرمود کجاست. دارست بیاره و محوه بیاره فقط فقد نبی نمی. و قیبت ولی نمی. ولی ما. قاعد ما. زعیم ما. امام ما. پیشوای ما. سعادت بخش جامعه و شری واسطه فیض الهی در عالم ما. آید. و کسرت عدو, بنا. کسرت عدو بنا اون دو شنان ما که این معانی رو نمیفهمن، توجه به مقام امامت برایشون جانی افتاده کسر کسیرند و قلت عدد ما ما هم که کمی در اقلیتیم خدا الله به تو شکایت میکنیم یعنی ما داریم این معنا رو میفهمیم که اگر جامعه میخواد مکتب توی خدا در او پیاده بشه باید بیاد سراغ اولیای تو که تو فرمودی نیقومن نا صبح القز پیغمبر تو هم فرمود ما این تمسک تن به ما.